بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشراق الأنبياء وسيد المرسلين فآله والصحبه أجمعين أما بعد يقول المالك رحمه الله واسكنوا فسيح جنانه الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمعة والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشية فبين الله هذا بيانا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا ثم صار هذا الاشب لا يعرف عند اكثر من يداه العلم كيف العمل به ما جامعی که درش زندگی میکنیم دردهایی که دردهایی که بهش مبتلا هستیم زیاد شد شیخ این اوراق که ما هست ابتلاعات و امتحان هایی که میشیم و دردهایی که میکشیم و مینالیم این دردها را برای طالب علم که طالب علم مال درمانش باشه حلش بکنه در ده قبلی شرک، در ده قبلی شرک اصل اول، شرک. دنبال توحید بود بشیم، دنبال اخلاص در عبادت و طاعت بود بشیم. این در ده قبل جامعه منه، در ده قبل مردم منه. این مصیبتی که ما بهش دشواری، حالا هم اصابت کن مصیبت، فقط اصابت میتری ها. گفتم آنها این، هو من عرضی، خودی. ما مشکل خودمونه، خودمون خدا مو خوب نشناختیم. قرآن من خوب نفهمیدیم. سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم بهش عمل نکردیم مشک... مشکل من ما مشکل ما خودمون نه بعضی میگن نه مشکلمون آمریکاست مشکلمون غربه اسرائیل است. مشکل مشکلمون فلانه همش به گردن اینا میذاریم حکام مین... حکام مسلمانان اینجوریان همش به گردن این میگذیم راه حل چیه میگن که باید بریم همه جمع بشیم هر هر حزب و گروه و نبی جان هر مسلمان هست باید با هم هم دستش ما هم جنب بشیم مهم که جنب بشیم اجتماع اصل دوم که داره بهش اشاره میکنه اینجا مؤلف میگه مجتمع باشیم ولی اجتماع روی چی؟ اجتماع روی و سنن این درد دوم مومت اصل اول توحید اصل دوم اجتماع ولی اجتماع اجتماع بر اساس امر معروف و نه از کرد نه اجتماع بر چشپوشی و حرف نزدن و نکردن و ایراد نگرفتن و مجامل کردن و مدارا کردن و مداهنه کردن ولا ترکن الذين ظلموا من نار ولا متمسككم نعم ولا تكنوا لا تداهنوا مداهنين نكونيد حقا نكوشانيد ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق انكارك يجيك كذا حقا كنتوا نكونين بباطل نكوشونيد حقائق را بيجي ذو معدوم اجتماع على أساس اساس قرآن اساس این تفرق با این فقط حل میشه اما اینکه که مسلمان همه جمع بشن و هیچ کسی هیچی نگه این اسلام با درد نمیخور او لما اصابتكم مصیب یوم حنین اذا عجبتكم کثرتكم فلم تغن عنكم بشه روز حنین رنگ حنین چرا مسلمان ها با دردشون نخوا کثرتشون زیادیشون جمع بسیاری بودن چرا چون افراد اصاز مسلمان زیاد بودن افرادی که هنوز ایمان در قلبش رسوخ پیدا نکرده بود وقتی که ایمان رسوخ پیدا نکنه وقتی که توحید انسان اخلاص انسان در توحید در عقیدش عقیده اصلاح نشه نگه نبود در همونجا از ذات و انواد عبور کردن اونهایی که تازه مسلمون بودن عهدشون به کف نزدیک بود نگه دیدن مشرکین درختی پاچه بهش آویز کرده بودن درخت متبرکه ذات و انواد قلو قالوا وقال صل الله عزّه عليه و والله لقد سألتم كما سال نبي سرایل موسى اجعل لنا اله كما لهم همون هم انتیزک بني سرایل از موسى خاص شما دلیل از, از من میخوید که برای ما خدا قرار بوده اما وقتی که عقیده اصل نشه، کسرخ و زیادی و جمع بسیار قدرت بازوبه دارن نمیخورن هم اونطور که انجام خداوند در روز حینه این چیزی یاد میکنه پس اجتماع بر اساس قران و سنت اختلافات حل بکنیم اختلافات کنا اون اختلافات اختلافات اساسیش نمونه اختلافات یک اختلاف تنوع یک اختلاف تفاوت اختلاف در فروع مسائل پیش میاد صحابه هم اختلاف داشتن در احکام نماز و ولی نه در اعتقاد ندر جماعت بازی این برای خودش یک جماعتی تشکیل بده بیعت بگیره و اون جماعت جماعت دیگری تشکیل بده و امت مسلمانان اینطوری متفرق میشه. نه هم تا از صبح از دادن که رسول الله صلی الله علیه و سلم اینطوری گفته شخص ناراحت بشه خشکیم بشه برخورد بکنه مبارزه بکنه جامعه می بینیم یک جامعه شافعی مذهبه اگر خلود نکندی داد و بیداد راه می‌دازند یک جامعه دیگر حنفیه اگر رفلی دین داد و بیداد راه می‌دازند. کجا تفاوت سنت؟ اگر قرار باشه اینطوری مسلمان به جون هم دیگه بیفتن دیگه اجتماع معنا نداره اجتماع روح نمیده اصلا این دردی که ما بهش اختلاق است درد اول شر، درد دوم عدم اعتصام و اجتماع بر قرآن سنت، درد سوم عدم شناخت حقوقی که خداوند و گردن ما مسلمان ها گذاشته در مقابل حکام حکامی که وجود داره. از مسلمانش گرفته از کافرش گرفته یکی تو آمریکا، یکی تو مینیزه، یکی تو عربستان، یکی تو یکی مثلا اینجاست هر کدوم یه جایی هستند اون چیزی که یک مسلمان حقوقی که ما یه حقوقی داریم در قبال خدا توحید یه حقوقی داریم در مقابل همدیگه مسلمانان هم. یک حقوقی در مقابل همسایه در مقابل پدر و مادر یه حقوقی هم داریم در مقابل حکام اب اینجا محامده به این اقزیه شرمی کنه میکی؟ احاديث سمع وطاعات مشاخصه فمدید رسوله اسمع واطع وان ضرب الله راقو اخذ ماله دیار ووصیكم بتقوه الله والسمع وطاع تمر عليكم عبد حبشی دن جو بش شواله وكان عبد حبشی احاديث زیاده دار این باب احاديث سمع وطاعات از حاكم از بلی امر فمدید خودوا فضبان یا ايها الذین آمن اصیع الله وقیع الرسول و اولی الامر منکم اولی الامر اهل علما و بلات امر هر دوتا شو همین بشن چنانتو در تفاصیر علم اومده حکام اصبر اینه که حکام قراشی بودن چنانتو خود رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ولیکن اگر غیر قراشی بود اگر حاکمی غلبه که با قهرش با قدرتش وزیفه مؤمن سمع قطعت چاره دیگر ندارم اما این که این بیا انقلاب بکنه اون بیا انقلاب بکنه هی مسلمانا در پی انقلاب باشن در پی توته باشن منقشه و برنامه‌ریزی و خون و خونریزی این خلاف حدی رسول الله صلی الله علیه و سلم بعضیا یا حدیث رد میکنن حدیثی که در صحیحین در سمع طه یا حدیث رد میکنن میگن ضعیف هرچند که حدیث در حد تواتره است تا جایی که اینجا میگه فبین الله هذا بیانا شافیا کافی بوجوهی من انواع البیان شرعا و قدرا بهای نواز شده داری این مسائل مثلا عمل اصحاب غیر بعضی رد قران و حدیث و آیات بعضی ها مفهومش رو هم تو کندسس و صفات و تعریف کردن بعضی ها نصوصی که در سم رد میکنن مثلا ما در همین حدیث سم که رسول بی فرمای و ان ضرب ظهرک و اخذ مالک فسمع واطع سمعت ادش تو شاکن که اون حاکم اون ولی امرت کتکت بزنه تو برداره یعنی ظلم کنه در حقت و بعضی آمدن این معنا رو عوض کردن گفتن که نه اگر ظلم یکی دو نفر مشکلی نیست ولی اگر زور بر با جامعه باشه باید اون جامعه از دفاع بکنن و اون حاکم رو قل معرو از با این ریخده ریخده نا کسی پایین بیارم. به هر نحبی شده خون ریخته بشه ریخته نشه نه کسی که درایت نداره اطلاع نداره بر کتاب های عق کتاب های و شروحاتی که اولممان نوشتن بر ففق احاديث مصباح علباری و, و غیر فتاوا و اجتهادات میکنن که خلاف شرع خلاف نصوصه مثلا خب ما شروطی گذاشتم اگر حاکم مسلمان چه رفتاری داشته باشیم اگر حاکم غیر مسلمان چه رفتاری داشته باشیم شهر مشخص کرده اگر حاکم غیر مسلمانه یا اینکه شما مسلمانا اغلبی قدرت دارید میتونه شرع خدا را پیاده بسم الله اعداد معنوی و اعداد مادی ندارید دیگه باید متوقف بشید شروطی گذاشتن خون ریخته نشه مفا... مفاصل ایجاد نشه برید بکنید شرح فتلواری شرخ ابن حجر, ابن حجر و غیر از عیمه شروط گذاشتر همین که نیست سر ما پایم بنازیم عملیات شریکی انجام بدیم، بریم تو کوه و تو این غار تو این سورا قسم به خودمون رو کنیم یکی دو نفر معمور رو بکشیم که ما میخوام انقلاب بکنیم ما مخالف نظام ای از نظام ها هستیم از نظام زمین، زمین. مسلمانه. اگر حاکم مسلمانو نه ظلمی کنه وظیفته سب بکنین توجیه رسول الله صلی الله علیه و سلم خودش در همین احادیث توضیح به سب میکنه ما مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلام در این احادیث بیعت میگیرتن چنانچه در حدیث عبدالله بن صامد عبادا للصامد رضی الله عنه دیگه بیعت رسول الله صلی الله علیه و سلم علی السمع والطاعه فی العسر و اليسر فی المنشط و در سختی در خوشی بأعدد برسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول الحق ولا نخاف بالله الله اللهم تلعون حق ربي أستثنى ترسي حق ربي وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفر بواحا عندكم من الله فيه قرحة حق ربي ولكن حق توتينا وشه تحريك وشه تحريك, تحريك واتفنا وشه توتي توتي بارن وبرزي باري اسقطنا ما کنیم منهج خوارد دونه منهج بود دره و افتاری بود با حکام اولین کاری که عبدالله سبه یهودی که برای اصقاط خلافت اولین کاری که کرد توتعه معنوی بود تحریک واطف بر علیه رسنا ما ردن مال تنمی خوره پول میخوره خوره حاکم فلانه اینا در خوشی هن چون فلان ماشین سوار میشن فلان نمیدونم ساختمان دارن این که پول مال طبیعته طبیعت بش بشرم حسوده. وقتی که فرزندان یعقوب علیه السلام از حسادت برادرش یوسف چه انداختن وقتی که فرزندان یک پیامبر اینطوری شدن از باب اولاه بقیه بشر اینطوریان سرشون حسوده کدوم یک بیت میتونه ذوق بکنه که من حسادت در تو دل نیست الا کسی که خدا واقعا قلبش پاک و با وابسته به دنیا نکرده قلب همه اون به دنیا وابسته خب طبیعت انسانه این طبیعت که خداوند در ذات انسان قرار داده میگه هابیل توسط قابل کشته نشد در آخر چی بود حسادت بود این حسادت در بین ما هست و شیطانم اقوا میکنه اقرا میکنه شخص میاد شخصیت را تخیر میکنه حالا میخوام بگم حاکم مسلمان باشه غیر مسلمان باشه هدفش فقط شوروندن شورشه این کاری که عبدالله مثلا یه روزی داد هدف شورشه در یکی از بر علی شخص که بالاخره اون انقلاب اون قضیه پیش میاد یه جا هستن چند با جان و مالش یا کمربند مواد منفجره میبنده به کمرش میره فرانجا را منفجر میکنه نگاه نمیکنه اونجا زن مرد بچه هست غیر بچه هست مسلمانه کافر اونجا اصلا نگاه نمیکنه میبنده توی مسجد هم میره خودش را منفجر میکنه خلاف شرعه بقال معروف نمیگیم تو بقال مروف خواه تو کشتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در جهات در جنگ روبرو میگه پیر زن نکوشید پیر مرد نکوشید بچه نکوشید زن نکوشید این شخص نه به همین راحتی راحت کمربند و میبند خودشون مفجرد میکنه. این نوع مبارزاته، شورشه. و شوراندن مردم علیه حکام باید منذبت بشه همونطور که شیخ امن العثمین رحمه الله میگوید العواطف ان لم تضبط سارت عواصف او کما خار رحمه الله اگر عواطف منذبت نشه و شرق بيشه، بيشه. عاطفه میشه، طوفان میشه عاطفه انسانه یه جا ظلم بر مسلمان واقع میشه ظلمه حاکم مسلمان ظلم میکنه چه کار باید بکنیم باید به هر طریق شده باید خون ریخته بشه که اون حاکم پایین بیاد خیر. توصیه رسولات هستن بغیر از این این چیزی که توصیهی که اینجا میاره میگه که فبین الله و حده بیان شافیه خدا کافی کردن. بلي ثم هذا هذا الأصل لا يعرفه عين. عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به أثر أهل العلم من ديننا أهل العلم أكثر من يدعي العلم هناك مذيع علم بلي إن أصلنا من ديننا أصل سبع طاعات عدم الخروج برعلي حاكم مسلم من ديننا بل حاكم كفر بواحد مانع نمازج بله اینجا درسته ولی که گفتم محمود بن حجر و نرووی و غیره ائمه ا کتابوی فقی فقی و حدیثی گفتن شرط شروع جواز فساد ایجاد نشیخونی رشته نشه یا مقصده بالاتر از اون باشه نمیدونم قدرت رو داشته باشن توانایی داشته باشن اعداد داشته باشن و و و ما اله ذلک بعضیا بی تبری و بی تامیان گفتن این کیفیتش میاد اینو خیلی نمیدونم زمان میبره صدها سال زمان میبره رسول الله صلی الله علیه و سلم دعادتش یک شب روز زحمت کشید دعوت کرد در مکه یک بار صلاح برد نداشت یک بار اصلاح برد نداش رسول الله صلی الله علیه و سلم مگر اصحاب نمیتونستن شب برن ابو جهر ترور بکنه ذكر کنه ترور اثرشون برن چرا یکی از اصحاب بولا نشد ابو جهر ترور بکنه یا ابولهب که آیات تبت یا ذی نازل میشه چرا یکی نه ابو ابولهب ترور بکنه چرا یکی نه ابو سفیان رو ترور بکنه در اون موقعی که عداوت جنگ و, و چرا نبود اینها ها باید باعت بعضش درس بگیریم درسی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بمون دادن اول اعداد معنی بیر اول ما باید خودمون اصلاح بکنیم مسلمان را اصلاح بکنیم با اول باید توحیدمون اصلاح بشه ماحد بشه لم بحث و بعدا لما یاد مسئله بحث حکم و حکرانی و تحکیم شریعت و اینا دیگه مسائل ما بعد اونه این مسئلهی که اینجا بهش اشاره میکنه ماش... یک یک یک دو مساله فقط اسباب اشاره فقط بهش میگم بحث سمع اطاعات قال لمن تامر علينا ولو كان عبدا حبشیا عبد حبشی واش شرط و شروط داره این عبد حبشی سمع اطاعات با اطاعته یا اطاعت یا فرمان فرمانبری از اون حاکم فرق میکنه سمع اطاعت شرعی فرق میکنه با اون سمع اطاعت دنیوی اینو باید فارق بین نشرداری، قوانین آنها مرندگیه، نمیدونم فلانه، اینا مسائل دنیاییه. انتوم علاوه بر دنیا با خودمیزیم و دنیاتم. این سمعطات شرعیه، این سمعطات برای جهاده، برای کلمه نمیتونید، ولی که این سمعطات اول، لا طاعتیم مخلوقه فی معصیت الخالق. اطاعت در معصیت الخالق نمیشه. خونمونم رخته بشه، شر نمیاریم. نه نمیتونیم بیرون خدا، زیرا غیر خدا نمیتونیم. عقیدمونه. اعتقاد امونه، حدیث رسول الله صلی الله عليه وسلم سلم خط غرمز امونه، گفتی معقید امونه حاکم هر کسی میخواد باشه ما هیچ وقت معسیت خدا را به قیمت ایمان فروشی و دین فروشی انجام نمیدیم هر کسی باشه و نقول الحق ولا لا نخافه لو لوم حق را بگیم توسیق این بیعتی که رسول الله بگرفت و این بود حق انسان روش استقامات بکنه واسطه ندرسه این عقیده ماست این قسمت اول قسمت دوم بحث اینکه که آیاتی که وارد شده مثلا یا الذين امر قي الله و واول الامر منكم منكم یعنی چه مسلمان منكم مر مسلمان این سمع طاعات طاعات شرعی اطاعت شارعين بحثی که ولی امر از ما از ما از ما باشه از ما مسلمان باشه و همچنین فرموده قدابن ولیج الله لِلْكَفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلَ هیچ وقت یک کافر و یک زندگ یک ملحد هیچ وقت نمیشه که بقول معروف حاکم یک مسلمان بشه مثلا که رفتن مثلا پناهنده شده امریکا از عراقی ها از همون عراقی مسلمان رفتن تو لشکر امریکا اومدن مسلمانان و اقوام خودشون رو در عراق کشتن خیلی ها بودن رفتن هم رفتن به اسم گرفتن پاسپورتو نمیدونم گرین کارت آمریکا رفتن اونجا آخرش مجبور شدن خودشون یا فرزندانشون وارد ارتش بشن و با همون ارتش بیان برادران خودشون مؤمنین رو بکشند. حالا این میاد بره بحث نواخره اسلام اونجا ان شاء الله بحثش کرد اینها فقط باز، یعنی در یک فرانسز باید روش دقت بکنیم این از این مسائل اعتقادی که رسول الله صلی الله علیه و وسلم پیش کردند کردن و بیعت بر این اساس میگذره چون اگر این خزینه نباشه یعنی این قضای اگر من منضبط نباشه با این شروط احکامی که شرع گذاشته میشه هر و مرج هر حزبی هر گروهی هر باندی برای خودش سعی میکنه که بقول معروف به حرف که خودش رو کورسیفی کشنه، خودش باقل مرور به اون شک و شکرانی براسون. بحثمون در در مسئله الله هرچند که ایشلله در نو قدسان در مسئله سمت اعتقاد فرعی از مسئله تكفیره. چون وقتی که شخص تکفیر کرد، چیزی چی درست نیست. مشکل مشکلی که پیش میاد در تکفیر پیش میاد. شخص مثلا میاد حاکم یک مسلمان یک کشوری. حاکم یک کشور رو تکفیر میکنه لازمه تکفیر اون حاکم تحت تکفیر که حکم اون به قول خودش را قبول داره به طرف میگی چرا اون حاکم را تکفیر کردی؟ میگه دیدم که با مشروب میخورد میگه این بانکای ربوی تو کشورش هست میگه این نمیدارم زنا تو کشورشه کلیسا تو کشورشه فلانه همش اون قرائمی به قول خودش که دلالت بر کفرش میده سوال حکم مش نوشیدن مشروب چیه حرام یا کفر حرام فلان پادشاه فرانکشوری مشروب خورد کافر شد مشروب خورد سبحان الله حمار يا عبدالله الله لقب حمار بهش میدادند از صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم رضی الله عنه مشروب خورد شلاقش دادن دوباره راب این روز دوباره دیگر مشروب خورد دوباره شلاقش دادن دوباره سوم مشروب خورد شلاقش دادن بار چهارم مشروب خورد شلاقش دادن یک نفر الله ما اکثر اكثر ما يؤتى به قال لك العنوه رسول خدا گفت: لا تقل انه فانه يحب الله. رسول الله، الله ورسوله جزا. مشروب خورد. نه میگه قرائن دیدی که اینا استحلال دادن. خود در کشورها فروغ دادن تو هتل‌هاشون هست. طرف میره خودش آن. فناهنده انگلیس میشه، پاسپورت انگلیسیه، این کوپ ولی اینکه اگر مشروبی، نمی دونم، کلیسا کشوری زدن، میگه نه این قرائن دلالت دیدی که اینا نا کلیسا رو دوست دارن، اینا دلالت دیدی مشروب دوست دارن. اینا شکم به غیر معذربان، اینا اینا کافرن. گاهی یک معصیت پشت آن معصیت ما اینجا وقتی مدافع حکام نیستیم کاریمون هم نیست نه ازشون باد میگیریم نه ازشون پول میگیریم نه بهونه معروف جیروخور اونها هستیم کاری به کار اونها نداریم فقط بحث علمی شرعی اینجا بحث استخراج حکم یک حکم اعتقادی آیا می شود با نوشیدن مشروب یک کسی را کردن کرد شود آیا می یک کتی وارد کلیسا شد یا کلیسایی زاد یا زمینشو یک مسیح فروخ، آیا میشه تکویرش کرد؟ نه شاید هم فعل کف باشه ولی که تنزیل کف بر اون شخص آیا میشه باید روک رو اون شخص داد که اون شخص هم کافر شده؟ این مسئله دیگه هست این که کفر یک مسئله هست این که کافر شد یک مسئله دیگه است. و تمامی این مسائلی که پیش, پیش میاد همش پشت قضیه تکفیر و به قول بعد از خضیه تکفیر پیش میاد اول حاکم تکفیر میشه بعد اون علماء اون حکام بلفرس میگه شما دفاع میکنند از طاقود پس شما نمیدونم استحلال کردید حرام خدا بند شما آیه آیات قرآن را نقض کردید دلت شما هم کافرید ما میگید معصیت جای خودشو داره گناه جای خودشو داره کفرم جای خودشو داره شرکم جای خودش داره اینکه این كي شخص که مشرک میشه الله انشاءالله با در بحث این وقت از الاسلام بیش خواهیم دارده امس ایلیه دیگه هست اینجادتو قال فبین الله هادا بیانا شافیا کافیا بوجوه من انواع البيان شرعا شرعا کدونی خوران قل اطیه الله و اطیه رسول بیان شافیق و کافی هست ولیکن قدران چیه منزولش اینکه فعلی که رسول الله صلی اللہ علیه و سلام داشت و الله اعلم شاید منزولش این ب اگر ما بر بگردیم به تاریخ به قضا و قدر کنی خداوند، می‌بینیم که اعلی کلمه توشید وقتی بشه وقتی که مسلمان ها طبق هون چیزی که خدا خواسته با هم دیگه جمع بشن خدا نصرتشون میده کم منفعت قلیلت غلبت فهتن کده این, م... این تختیم مقدرات بوده رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحاب اندکی هدایت میشن بعد میاد مدینه کم کم کم, کم خدا نصرتشون میده. این نصرت پیش میاد این که میگه که از باب تج و قدرن هست ولی انصره من الله من ينصره کس کی خدا رو نصرت بده این سنت خدایی بوده محمد ها و می صاحب کتاب متی که میخونی یک نفر بود اون با خودش برگشت و دید که این مسئله داره روخ میده شرقیات هست و فلان رفت اول با حاکم اون منطقه شیخ منطقه رو باکت کرد با شیخ منطقه قانع شد گفت بس الان که این حقیقت رو بهمون گفت یواش که بریم دعوت بدیم رفته از این حکومت شیخ اون حکومت شیخ اون شیخ اون شیخ قانع کردن تا اینکه یک دولتی شد تا اینکه یک قدرتی شدن برای خودنا دعوت از اینجا پیش میاد این سنت خداوندی یعنی مقدرات خداست ولی که با خلاص باشه برای خدا باشه نه برای جا و مکان نه برای پول نه برای اینکه چاهای نفت فلان کشور به دستمون بیاد ج به با نفتمون رو برداشتن نمیدونم اون آب آبمونده زمین رو برداشتن خیلی ازسلییان شعار میدن نه یهود اومدن زمین مادر باجان دیینتون دارم برمیدارم. ما که نمی جنگیم با خاطر زمین فلسطین ما که نمی جنگیم نمیخوام بجنگیم با اسرائیل به خاطر اینکه زمینمو اوورد یا نمیدونم اومده با عرب داره می نه به اسم عرب و نه هم به اسم ظلم نما به اسم علی کلمه توحید بود به جنگی با یهود جنگ و نصره امیتا از مقاتل اند حتی یشهد ان لا اله الا الله این دستور قدوان ده وقتی که مسلمان ها عقب نشینی کردن جهاد رها کردن درگیر شدن با جنگ های داخلی و دا با جنگی که اونها دارن بقل معلوم اون کاری که ما باید بکنیم با اونها دارن بر علیه ما میکنیم اونها آمدن بنا برده ما مشکران تدار علیکم امم قالوا من قلت نحن اليوم هذه يا رسول الله قال بل قال بل يوم انتم كثير ولكن غزاك غازي سين همونات زياده تمامي امه از آمریکا گرفته انگلیس گرفته همه ریختن برا سر امه اونها دارن میجنگن با ما ولی ما جنگ راه ها کردیم وقتی که بحث جهاد میاد چی میگن خیلی از داد میگن نه جهاد که تشریع شده برای دفاع از نفس رسولا برای دفاع از خود جامعه خیر برای اینکه شرق رو از روی زمین پاک بکنه ما بر بگردیم. وظیفمون اینه که با هند و هندو و بودا و غیر بجنگیم با یهود و نصارا بجنگیم صلیب روی زمین نباشه وظیفمون بجنگیم که بتری روی زمین نباشه گاوی پرستیده نشه این دعوته وظیفمون اینه ولی با شروطش همون که رسول اعداد و عده بعد از این که انجام داد رب نبات اینطوریه وقتی که پیش اومد وقتی که مسلمان هم همدست شدن یک دست شدن قدرت و توان معنوی و مادی داشتن ولی اونجا که پیش اومد. نه اینکه همینطوری شخص خود سرانه بره با قول خودش بره بجنگه و بره به نبرده با هندوز مثلا بالفرض یک میلیارد و نیم بره مثلا بگه که من میخوام با اونها بجنگم منظور این که اینها از مسائلی هست که اهل علم خیلی از اهل امشنان تا خودش میشنن که اونهایی که ادعای علم میکنن نظر عالمانه روش ندارن نظر عالمانه روش ندارن یعنی از دیدگاه علمی بهش نگاه نمی کنن انقلاب توی مصد شد شکست خوردن یک حاکم اومد حاکم دیگر با ظلم با هر چیزی بود اومد وظیفه مسلمان ها چیه؟ خروج دیگر باید مرد رو خروج کنم. کنن این خلاف حدیه رسول الله صلی اللہ علیه وسلم توطعه کردن برای این که خضیه پیش بیاد تبریر پیش بیاد که بگن نه حرف ما حقه این خروج جایزه چی؟ این حاکم زندیقه، کافر سکولار آلمانیه، دین فروش فلانه تکفیر میشه بعد از اینکه تکفیر شد دیگه خود به خود راه باز میشه و هرزومت پیش میاد انسان باید درس میگیره درس از چی؟ درس از فتنه هایی که شد به نفع کی شد و چه نتیجه و چه سمرهی داشت انسان به عواقبش نگاه بکنه عاقبت انقلاب در سوریه چی شد؟ وزیفه منه حمایت از مسلمان هم وزیفه دعا برای مسلمانان. سر و چشم ولی که ما میگیم آثار عواقب یک فعل توش نگاه بشه خوهرمون برادرمون به جون همدیگه افتادن همدیگه را تکفیر کردن دارن میکشن آوارش شدن نه نس، خیمهی نه سربناهی نه پوششی نه لباسی گرسنه، تشنه توی بیابون از این کشور به اون کشور عده بسیاری فناهنده اروپا شدن نسیهی شدن نصرانی شدن یهودی شدن خدا میدونه چی شدن این عاقبت ناامنی بعدش خوب شد علای کلمه ترخید شد مساجد خراب شد مسلمان ها کافر شدن مسلمان نصرانی شدن مسیش برست شدن اینها باید یک شخص مسلمان باید زیرت باشه و بهش توجه بکنه قاله الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء فبيان من تشبه بهم ليس منهم بين الله هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى يا بني إسرائيل كل نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيا يفرهبون إلى قوله يا بني إسرائيل كل نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البريء ثم صار هذا أغرب الأشياء فصار العلم والفقه هو البدع والظلالات وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الحلق وبدحه لا يتفضر به إلا ذنديق أو مجنون وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم إنسان غير عالم, عالم بش رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان كذا هذا نشان هاي قيامة إن الله لا ينتزع هذا العلم إنما ينتزعه بالقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالة فأخذوا بغير علم فضلوا وأضلوا بوايا ما بفهمي كي أهل علم باعيل بقرآن وصنات صفاتني كونك كي باهاوها صفاتني كونك كي أهل علم كي هدفش کرسی و کی هدف سیاست و کی هدفش دنیا و کی هدفش آخرته ما بفهمیم اون کسی که صحبت میکنه اهل علم یا اهل علم نیست میگه این رو باید به مردم بفهمونیم اون کسی که لباس علم پوشیده و اون کسی که اهل علم اون جاهلی که لباس علم شده عمامه بسر کرده میاد احادث دروغ میگه یا دعبت مرد فرستی میده اینو رو باید مردم بفهمن هر کسی که لباس الگوشد عالم نیست میگه و این مسائل را خداوند در قرآن بیان کرده شما میگه قصه بنی اسرائیل را بکنید از اونجایی که خداوند فرمود بنی اسرائیل را طول نعمت الاتی و علیکم به بعهدی و عهدی که خدا ازشون گرفته چه عهدی گرفت که حق را بیان بکنن و که حق نکنند و باطل را انکار بکنن این عهدی که خدا به اوفه بعدی کو بیا یا از من بترسید بعد متقصّهای خداوند در این بین بیان کرد تا رسید به یابنی اسرائیل تور نعمتی اللتی نعمت او علیه نعمت های خدا را بیاد داشته باشی نعمتی که خدا به ما مسلمانان داد قرآن و سنت بود با رسول الله صلّى الله عليه و سلم این عزتی که به ما مسلمانان داد با دعوت رسول الله بود با قرآن و سنت بود عزت بغیر از این دوتا تماس کی به این دوتا هیچ وقت بدات نیام عزت عزت مسلمان طرف مسلمان مسلمانا پیش نخواهد آمد الا با آن چیزی که رسول طرف راش شد سربلند شد پیش نمیاد الا با اون با نهج اونها روش اونها بلی عزت خواهد داشت اما با پشتدن به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلام و کنار بزار شده هیچ وقت عزت برای مسلمانا پیش نخواهد اگر اگرم پیش بیاد پیش اومدن نسبیه و بعدم نابود میشه و از بین میره این درسی که ما باید از این قصه ها بگیریم ببینید عاقبت بنی اسرائیل چی شد؟ وقتی تورات را کنار گذاشتن دعوت را کنار گذاشتن دعوت خدا که تو تورات بود تورات را کنار گذاشتن از دست دادن بهش عمل نکردن عاقبتشون چی شد؟ ببینید بکنید سوره البقره بکنید چی شد در بدر در حکومتی با حکومت دیگر اسکندر مقدونی و نمیدونم بومبی نمیدونم رومانی و غیر و مدن در بدر شدن بعد کوروش اومد اونا رو برگردوند و بهشون دوباره عزت داد و دوباره نابود شدن و در بدر شدن umat اسلام عاقبتش همینه از قصه‌ی بنی اسرائیل که درس نگیر از کجا میخواد درس بگید؟ این درسای قرآنیه میگه اون چیزی که در سنت اومده واضح و آشکار اون چیزی که اون احادیثی که رسول الله صلی الله علیه و سلام بیان واضحی داشته در بحث اینکه انسان باید مرجعیتش باد چی باشه بعد به کجا بر بگرده؟ به اون قرآن خداوند، به اون سنت، رسول الله صلی الله سنت در نماز میگه صل که مرايت خداوند در قرآن آشکار میگه خود ان توم تحبون الله فتبیون، اگر محبت تو الله را با ازمان تباآبکنی، دکتاب بد از رسول الله علیه وسلمش. این همه کت میدن، عمی راحت میدن، ولی کی نمیذارد اون عمی هدایت بشه؟ اون کسی که لباس علم بشه اون کسی که با ازمه لعلمه مانعش بشه، اون عمی میخواد، خیر خواهد، بهش میگی میپذیره. بلکه اون شخصی که این ازم گفتم مؤلف اینجا مصیبت‌هایی که ما بهش دوچاریم در این کتاب داره میگه یک جا گفتیم مشکل مصیبت در توحید یک جا مصیبت در عدم اسلام به خراسان یک جا مصیبت در عدم حقوقی که ما برگردن ما حد در مقابل حقوقام یک جا هم مشکل من مشکل من اهل علم اهل جهله که با چیکار بکنیم وظیفه ما این که علم هم قضا اینا این دوره این اینجا شما نشستی فقط وظیفتون گوش دادن نیستا این متن رو باید حفظ بکنید این متن رو باید برید به مردم برسونید این وظیفه ماست قل هذه تدعوا الى الله وادرید از روسا و از این شهر و اون شهر نه اینکه غیر شما برای پاکستان بلند بشه از ورانسا بلند بشه بیاد تو این مسجد امسه 40 شب و 40 روزو نمیدونم چهار ماه بشینه و بعد دعوت بده شما وقتی کوتاهی بکنید نرید مسلمانا کسی دیگه میاد جای شما پر میکنه اینو میخواد بیان بکنه مرض از شما از درد از ماست وقتی که ما کوتاه کردیم غیر ما اومد ولی وقتی که ما کار میکردیم اگر علم به مردم میرسوند مسلمان مردم نمیرفت به طرف اون جاهل مردم رو نمیوردن به طرف اون ما باید استقامت بکنیم ما باید محکم و سوار دعوتمون باشیم این مسئله از مشکلاتی که ما بهش گفتم بهش دوچار هست میگه الانطوری شده علم فقه در دین صحیح شده بتعاس جمهوریت حال ما داریم ارزش کتاب محدو رو را میدونیم کتابه اممی ارزش رو میدونین کتابه دیگرن؟ چقدر به خورده مداد اینا تکفیر میکنن اینا رو ب نه. کدام تون این کتاب هاست؟ کدام تکفر تون کتاب ها هست؟ کلاببتمی نقض این خضه ای هست؟ ابط تفر نمیکنه؟ محدو ها تکفر نمیکنه. محدو ها بخوا بکنه مسلح؟ درد که بهش دتاره میگه من میگم سنته دیگه می نه این گمراههیه؟ سنت بیان شده گمررهاهی؟ بتو متشش بيه گمراه في الأرض فالارض لا يكونن ترى شلون يجي الله عليه والسلام يجي واخيار وما عندهم لبس الحق بالباطل بتجئك تلبيس يكون حق باطل مثلا يجي باجان ولود خني ربيع الاول حد الله صلى الله عليه وسلم رسول الله اذا نك صحابان يكون نك خير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها المحدث باتفاق محدثه قرن پنجم فاطمی ها اووردن توی این مصبت فاطمی ها اسماعیلی ها اووردن نبود تو اسلام شما یک روز خاصی تخصیص دادید به جشن بلاده اون شبی هم که رسلا وفات کرده همون شب شما دارید جشن میگیرید شبی که بلاده چونه و شبیه که وفات شده با ظهر قبل. اول به چی بخیمتی که چهار تا ابیات شرکی بدعید خونده بشه اونجا که بله محل قیام بلند بشن که رسولات اصلاح حضور میابه حتی خود صوفی ها اونهایی که اهل تصابفن مثل قسنانی در مواهب لدنیه رد میده میگه ای بگه میگه شور نه شعورتون نمیکشه میگه میگه کدوم عقل میگه پیامبر خدایی که گفته انک میتون دفنش کردن توی مدینه میاد حضور پیدا بکنه در این مجلس در اینجا در زواذ ربیلا ول در اون مجلسم میاد حضور بکنه هی در اینجا حی و قیوم این صفات خداوندی داره کسی که حی حاضر میاد و محل قیومیت براش بلند میشی از کجا ور این دین این رفتار این تعظیم ها دست وضان این, این تعظیمی که شایسته فقط خداوند عبادتی که ما فقط برای خدا انجام میدیم در برای خدا میبندیم برای خدا میشیم میام برای, می برای بنده خدا انجام بدیم چرا این کارو داریم انجام بدیم این خرافات این تلبیفه حال اومدی گفتی با جان این درست نیست رسول الله صلی الله علیه و سلم در بحث جمعه چی میفرمان میگه لا تخص ليله الجمعه بقيام ولا تخص يوم الجمعه بصيام روزه سنتته قیام سنتته ولی که میگه تخصیص ندی بشه به جمعه تخصیص ندی بشه بروز جمعه روز, روز, روز, روز جمعه به یک روز خاصی اختصاص ندید می هر روز روزه بگیر؟ نه فقط شب جمعه نه گفت روز جمعه روزه میگیرم. این عبادت است فقط برای خداست حال یه چیزی محدث به اسم عبادت که برکت میاره خیرات میاره برای یک روز خاص اونم دوازده ربیع الاول این بدعت نمیشه این محدث نیست حال من قبول ندارم من اینو گفتم تو میشی چی تو میشی داعیه گمروهی تو میخوای مردم, مردم رو قبر ها بکنید می خوای مردم رو به جهنم می ببری بعد میکنه جون چی میگه میگه اینا اینا با صلوات بر پیامبر مخالفن اینا ضد رسول الله الله علیه و سلم اینا ضد دینه اینا لبس حدا سلامات میگه بعدش مو جمع میشیم صلوات میگیم درود میفرستین صلی الله علیه و درود میگین درود میگین این که ما اینجا در این مجلس حدیث رسول الله صلی الله دادیم اونها در اون جشن میگه یا فقط شعر میکنن، شعر برده و وردنگی میکنن ما هر اسم رسول الله دي صلى الله عليه و تا ميگينا اينا لا اينا صلوات اينا مخالفت صلوات ان مخالفت با صلوات اين تلويسه و خيار ما عندنا لبس الحق اللي لو تلبیس حق الحق و تلميكنا اينا ضد نميدن ابا اجدادمونن اينا ضد نميدن راه بزرگانمونن و صار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه و مدحه لا يتفبه به الا الزنديق مجنون اگر كردي شي حرفي ان حق را گفتي تو ميشي زنديقن تو وصار من انكره وعادهه وفننت التحذير منه والنهي عنه والسقي اجرمدي رد محضرها كتاب نبشي رد ابن تيميه كتاب نبشي تو بشيشي عالم سخيف دانا انديشمند فريخته عالم دهر عالم فلان مثل كارل كوسري كرد كل كتاباتش اون گوسري همات كور كرد از دثنام دادن به و به ابن تيميه هر دثنامو كورش و استادا کیه علامه ده گزریه دروغ گفتن بر علی ابن دروغ گفتن بر علی محد او کتابش پر از دروغه بله عالم دهره جرئت نداری بگی این کوثری دروغ گفته اگر گفتی به اون شخص چون حنفی بوده اون حنفی بهش رد میکنه نه تو ذری علمای تو با میکنی بهانکه علمای ما رو داره توهین میکنین با چه توهینی اون داره توهین میکنه اون داره دروغ میگه اون داره ناسزا میگه بل شيء تلفي حق المتكلم اصل اخرهم كتمام بكونه ما قال على الاصل مقامس بيان الله سبحانه لاولياء الله وتفريق به بينه وبين المتشبهين به من اعداء الله المنافقين والفجار ويكفي في هذا آية آية في سورة آل عمران وهو قوله تعالى ولئن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله وآية في سورة وآية في سورة المائدة وهو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأت الله بقوم يحبهم ويحبونه وآية في يونس وهو قوله على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكان يحبون ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لابد فيهم من ترك اتباع الرسل، ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد، فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى، فمن تعاهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. رحنا من كلام أصل الشجرة، اینا اصل بندو میزنه برای دوباره الله رايحو سبحانك اللهم الحمد على محمد محمد